زندگی روزمره امروز منو شما مثال بزنم آقا بنده درآمدی داشته باشن خمسم رو دقیق دادم فرض کنید از نظر خمس یک ریال بدهکار نیستم نیست از نظر زکات هم گندمکار هم. طلاب حد نصاب رسیده سکه مثلا چنانی رایج دارم یا شطر و اسب اون که توی زکات مطره پرداختن من هیچ دینی ندارم اما الان پنج میلیون تومان پول نقد اضافه مخمص دارم خوص داده شده زکات داده شده شرعن از نظر فقهی چیزی به من نیست من زکات دادم، خمسم دادم، این پول حلال منه. الان گذاشتم تو کشو میذارم. اما همسایه من امشب نصف شب دلش درد گرفته، می‌خواد بره بیمارستان. همسایه من دخترش می‌خواد شوهر بده، جهاز نداره، آبروی داره. من از نظر فقهی ممکنه توجیه داشته باشم. خمس و زکات دادم،, دادم. اونایی که خمس و زکات از من گرفتن، وظیفه‌شون شنو برن، فقیر رو در جامعه شناسایی بکنن بهشون داره یا نه؟ اما از نظر اخلاقی اگر میخوام آدم بشم، رشد پیدا کنم، فردای قیامت به پیغمبر بگم یا رسول الله من آیه لغت کان لکم، فی رسول الله عصوتن حسن رو خوندم، قبول کردم، شما رو عصوه قرار دادم اخلاقا وظیفه من اینجا چیه؟ وظیفه دارم بدم یا گفت که چند سفر مکه رفته دست درست کردم دیگه اخلاقی اجازه بدید، این چند شب رو اختصاص بدید به خاطر اینی باعث دلعتم به ممکه هارمان اخلاق تذکرات اخلاقی ارز به خودم میگم شما میشنوید، خب چند سفر مکه رفته یه سفری میخواستم برم مکه، شب دعوت کردم بستگان اقارب رو منزل ما که با اینها ودا کنم، شامی میان منزل ما باشون، فرنا مخواهم برم مکه، سفرهای گذشته پولم که سکه بود جمع میکردن توی یک مثلا کیسه ای می میبستن این مقدار پول از ارابه بر بیاره. حالا چک مسافرتی و دیره این امکانات که نه نب... مهمنا خونه ای ما بودن بوی کباب از خانه همسایه. هم. یکی از بچه های مهمان به هاگره کباب میکنن. اما تو خونه کباب دری نکرده بودم گفتم می نداره میرم خونه همسایه در میزنن یه مقدار برای این بچه می گیرم. هر یه یه ذ غذا بهتهیه کردم بردم. خانم اومد پشت در خانم یه از این کباب لطف کنید برای این بچه سرش انداخت پایین خانم چرا جواب نمیدید؟ هیچی نمیگه سر داخت پایین من که جسارتی نکردم چشما اش شد قلتید ریخ پایین گفت خب این کباب بر شما حرام است چرا؟ گوشت میته است چرا گوشت میته؟ بچه های یتیم دارم فقیدم از گرستنگی داشتن میموردن چی گیلم نیومد گوشت <تصفح> میته تحییه کردم چون میدونید از باب استرار گوشت میته به اندازه ای که از مرگ نجات بده اشکاله لذا ما مجبوریم شما نمیتونید از این بخوریم یک آنتکون خوردم من سفر واجب رو رفتم وقتی سفر واجب رو رفتم این سفر مستحبیه چی بهتر پول یه جا بیارم به بی این بده رفتم پولم رو برداشتم یک جا دادم به فقط اطرافیانم هیچی چی نگفتن گفتن من مکه نمیرم سفر گذشت تموم شد حجاج برگشتم جمعیت که به دیدن حجاج می به دیدن هرکی رفتیم به فلانی شما کی اومدید گفتن چطور گفت در عرفات شما رو دیدیم در منا شما را دیدیم در مشعر شما رو دیدیم در رمی جمرات شما بودید در تواب شما بودید تو حجر اسماعیل شما بودید تو بقی شما بودید تو پلم و امام علیه السلام زمان امام بود امام علیه السلام دیدم فرمود چند نفر حاجیان یکی شما زد زیر گریه گه اینه این اخلاقیست دیگه فقیقی که از نظر فقهی توجی داره کمال حقیقی برادر و خواهران بر معنای اخلاق ایجاد میشه پیغمبر آمده است ما را کامل کند اون وقت این پیغمبر می‌فرماید انی باعثم اوتم به من مکار ملخلا